من رنج میبرم به خدا قسم قسم میخورم امام زمان رو شاهد میگیرم اینا رو به عنوان درد شیعی میگم ما توجهمون به امام مثلا چه در بحث عشق به ظهورش عجل الا ظهورک عجل الا ظهورک هی تو سلام میزنم، احترام میذارم بر این حده اما عمق فهم عجل الا ظهورک یعنی چی مگه حدیث نخوندیم امام صادق مگه نبود مگه ابواب نبود آقا جون کی ظهور میشود فرمود نکنه برای دنیات نکنه برای منافع دنیاوی تا آرزوی ظهور ما زمان میکنید. اونا چی میخوان؟ اونا چجور شاگردان میخوان؟ اونا چجور شیه میخوان؟ ببینید اونا مالک اشتر میخوان. مالک اشتر میغره، میجنگه، میستیزه در دفاع از امیر با تمام وجودش. حالا چند قدمی چادر و معاویه است. هیچده ما جنگ سپین طول کشیده. شوخیس آقا؟ شخصی مثل مالک اشتر با اون قدرت معاویه را میشناسه که کیه؟ به اندازه مالک اشتری علی را میشناسه کیه؟ و میدونه این جن یعنی چی؟ و میدونه اگر معاویه را ورداره و مانه را سر راه علی ورداره یعنی چی؟ با همه این مقدمات میگرد و جلو میرود خبر بهش رسید مالک نزن چون علی فرموده برگرد. اون غذای های اکمیت و غیره و غیره که میدونید بعد از اون که مالک یقین کرد نقشه دشمنان نیست و واقعا دستور مولاس برگرد شمشیری که به دستش داره فرود میاره بین راه برگردون اینا رو میخوان لذا وقتی مالک شهید میشه امیر المؤمنین اون غر عشق که عشق محاسن مبارکشونو خیس میکنه و بعد میفرماید خدای مالک را بیا مرزد او برای من انگونه بود که من برای پیغمبر بودم هشام میاد خدمت امام صادق علیه السلام جوان ویست چند ساله امام تمام قد بلند می شود هشام و بغلس خودش می شونه به تعبیر من دست نوازشی به سر روشون می کشه. بعد می فرماید بیا که زبان تو برای ما چون شمشیر مالک برای علی ابن عبیتاله زمان علی مشکل جنگ بود ولی شمشیر زنهایی مثل مالک می خواست. زمان من زمان بحث است و زمان مکتب تراشیه و زمانی است که دشمنان میخوان افکار شیعیان ما رو آلوده کنن زبان مثل توی هشام رو ما احتیاج داریم که باید برقیزه و این بحثا رو بکنه اما در همه این مراحل چه اونجا باد شمشیر بزند چه اونجا باید بحث کند اون چه که مطرح است شدن در مکتب امامان است میگه حتی در دورانی که معلم سر کلاس نیست تکلیف رو به شما داده که سواد روی بیاض که در اختیار شما هست چقدر اون رو عمل میکنید؟ اگه معلم بیاد سر کلاس وقتی این سواد روی بیاض عمل نمیشود در قیاب معلم معلم بیاد اول درگیر با خود معلمیم مگر امیرالمومنین المومنین 25 سال خانه ننشستن؟ در این 25 سال ال ظاهر پشیمان شدند اومدن در خانه علی یا علی خسته شدیم حالا تو؟ خب حضرت اومدن اولین قدم نماز ترابی رو بردارید اه علی نمیذاره ما نماز بخونیم فرض کنید جنگ سفیم میشه آقا بجنگید قرآن نیست دروغه ما باید با اینا بجنگید اه علی میخواد با قرآن بجنگید حکمیت آخه بین حق و باطل که حکمیت معنا نداره نه باشه خیر اگه بنا سقم باشه بذارید مالک اشتر باشه نه بعد ابو موسای اشتری باشه بعد ابو موسای اشتری رو میارن اون کلا سرش میره علی تو چرا کلا سر افتاد حضرت چی میگه به این مردم خدا یا منو از این مردم بگیر به من مردمی بهتر از این مردم بده صادقانه بگم اگه امام زمان امروز ظهور کنه همین مشکلاتی که با امیرالمومنین با مردم داشت امام زمان با من شیعه داره یا نه به جهتی که من در عمل چقدر شیام لذا میخواد بگه اگه میخوایی شیعه باشی اگر قبل از ظهور حضرت توجه داشته باش میتونی کار کنی آقا اون همه رنجها ها که کشیدن تا این سواد روی بیاض بماند برای امروز من و شما میتونیم بهانه کنیم چون امام غائب بس ما نتونستیم میتونیم بهانه کنیم ما بهانه نداریم بلی که از ما طلبکارم با همه زحمتی که پیغمبر تا امام اسگری کشید و آمادگی که امام زمان علیه السلام دارد برای تحقق اون آرمان الهی در این آدم شما یعنی من ماها کوتایی می کنیم و رو نشون نمیدیم لذا بهانه کنیم امام غائب بود این بهانه پذیرفته نیست مگه نمیگه شما در دوران غیبت امام زمان میتوانید مثل کسانی باشید که مثل هزار شهید جنگ بدر مگه نمیگه به ما شما در دوران غیبت میتوانید به گونه ای زندگی کنید که اگر در زمان ظهور عزت بودید انگار در رکاب حضرت شمشیر زدید و در خون خودتون غلتید در همین زمان میتوانیم به گونه ای زندگی کنیم که نامه‌ای که برای شیخ مفید میدان براشون بفرستند. انایتی که به علامه هلی کردن بهشون بکنن گر گدا کاهل بواد تقصیل صاحبخانه چیز این میخواد بگه کلاس درش بازه اگر چه معلم این عصر در کلاس نیست ولی نظاره بر کلاس داره 11 معلم قبلی هم مطالب رو دادن و اینم که معلم نظاره نداره با دو دید عرض کنم تقاضا دارم دقت کنید یک اگر عموم شاگردان نمیان سر کلاس که معلم بیاد تو کلاس اما اگر برخی شاگردان در این زمانی که معلم از کلاس رفته بیرون بری این ورانور بگرده بگه معلم کجاست بی معلمم تنها موندم کتاب باز کسی نیست به من یاد بده این در اون در میزنم خسته شدم اگر این گونه این طرف و اون طرف برود معلم اشاره میکنه مگه نفرستاد کنار کعبه ده شانه علی ابن ابراهیم محزیار زد گفت ما ترید چی می‌خایید سرشو برگردون گفت عن الخلق من اونو میخوام گفت اون من فرستاده تو رو ببرم پیشش یکی دکتراشم میگیره هر چه درخواست میده برای من کلاس بذارید میگه برو تو رو امتحان کردیم نمیتونی کلاس بری یکی لیسانسش تموم نشده انگوش روش میذارن میگه تو رو برای تدریس میخوایم بمان در دوران غیبت یعنی کلاس ولایت از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت کلاس ولایت اینه ولی الله نظاره داره چه کنه نه چند روزه دنیا با برای نظام هستی یه جلبش در دنیاست که حقیقت هستی عالم بعد از مرگ ما چجوری زندگی کردیم از لحظه مرگ به بعد بگه شماها رو جدا کردن برای اون مرحله، شماها رو برای این مرحله.